افسانه یک کچل ها شانزده داستان زیبا به قلم حمید رضا خذایی ارائه شده از کانال هزار افسان مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده بانو اسرائیل، یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود کچلی گله گوسفندی داشت که میچروند یه وقتی یه نفر جله گله رو گرفته بود داره به گوسفنداش نگاه میکنه ازش پرسید تو هستی امون؟ از کجا اومدی؟ غریب گفت من نبودم اما تو منو یاد کردی کچل جواب داد من که تو رو نمیشناسم. چی جوری تو رو یاد کردم؟ غریبه خندید. و گفت همین چند لحظه قبل چی تو دلت گذشت؟ کچل جواب داد گفتم اسرائیل چه شکلی و چه شمایلی داره. قریبه پاسخ داد خب اسرائیل خودم هستم. یهو دست و پای چوپون کچل لرزید و با تت گفت حالا چیکار کار داری؟ برای چی اومدی اینجا؟ چرا جلوه گله رو گرفتی؟ ازرائیل بهش جواب داد نه ایمدم که جونت رو قبض کنم. اومدم تا یه گوزفندی از توی گلت انتخاب بکنم و با خودم ببرم. کچل گفت این گله شریکیه مال چند نفره بندای خدا گناه دارن؟ اسرائیل جواب داد گناه دارن یا ندارن باید یه دونه از اینا رو به من بدی کشل با خودش فکر کرد مهم نیست حالا قوچه منو نبره هر کدوم از اینا رو خواست ببره. اسرائیل رفت و از قضا قوچه کچل رو برداشت و با خودش برد. یهو کشل دازد امو اسرائیل جواب داد بله گفت اگه همه گله رو میبردی دلم نمی گرب. اما تو رفتی و صاف بوچ من رو برداشتی با خودت بردی اسرائیل خندید و گفت گلتو رو بردارو برو بندی خود چاره ای نداشت گله رو به طرف ده پیش برد تونتون اومد و گله رو به سایه باش پست داد و برگشت جایی که اسرائیل رو دیده بود میگن اون وقتها اسرائیل از هر کچه که رد میشده ردش روی سنگ و خاک پیدا بود. کچر رد اسرائیل رو گرفت و اومد و اومد تا رسید به یک کوه بلند. اونجا یه برج سیاهی رو دید که دید همه در و دیوارش از آهنه. با خودش اومد و گفت اسرائیل، ببین چه جایی داره. همش از آهن و فولاده سنگی رو برداشت و به در کوبید اسرائیل از بالای خونه یه سرک کشید و به پایین نگاه کرد. گفت: چیکار داری؟ کچل گفت اومدم یه خبری بگیرم. گفت کارتو بگو. کچل گفت آدم از مهمون اصول دین نمیپرسه بیا در رو باز کن. اسرائیل اومد در رو باز کرد و؟ کچل وارد برج اسرائیل شد دید که قوچش یه گوشه وایساده و اونجا هر چی چش کار میکنه پر از شیشه است انقدر شیشه است که نگو بعضیاشون پرن بعضیاشون تا نصفه بعضیاشون هم خالی بودن کچل گفت این همه شیشه اینجا چیکار میکنه برای چی اینا اینا چرا خالین ازرائيل گفت چیکار به این کارا داری گفت برای چی اون شیشه خالیه اون شیشه تا نصفه است اون یکی لب و لبه اون یکی هم خالیه اسرائیل گفتو نمیفهمی آدم میزاد کچگو خب حالا بگو تا بفهمم اسرائیل جواب داد این شیشه ها شیشه عمره اون شیشه ای که پر شده عمر صاحبش به آخر رسیده اون هم که نصفه است صاحبش نصف عمره اونیم که خالیه اول زندگیشه کچل پرسید شیشه عمر من کجاست؟ ازرایل گفت چه کار به شیشه عمرت داری؟ کچل گفت میخوام ببینم چند سال عمر میکنم. ازرایل رفت و شیشه عمری رو برد که نصفه بود. یو کچل گفت این که نصفه است؟ ازرایل جواب داد خب یه مدتی عمر کردی؟ حالا همین قد دیگه باقی مونده تا عمرت به آخر برسه. کچل گفت این شیشه ها رو خودت پرو خالی می‌کنی؟ ازرائیل گفت نه دست خداوند عالمه. شیشه ام که پر شد میرم و جون صاحبش رو میگیرم. کچل گفت یعنی تا شیشه عمر کسی پر نشه تو حقی نداری جونش رو بگیری؟ ازرائیل گفت نه. کچل گفت حتی اگه از دست کسی قهرت بگیر و خشمت بیاد ازرایل گفت تا خداوند اجازه نده نمیتونم کاری بکنم گچل گفت حالا که اینجوره گوچمو میبرم تو هم هر کاری از دستت برمیاد بکن و کوچشو برداشت و از در بیرون رفت